یه رنگ ترکیه شده و شاهشو رو گفتن که مبارزه دیم از شکل داخل میکرد که بچه رو بایی میزید داشته بچه بیدید باییید باییید که از خضرگان از نصف خوب میاد که این مبارزه دیم یکی که این ترک بچه دره بیدید بایید شاه ها درسان توفن مدعیان میشنه بست شاه ها درسان افراسی ها به سیاهوش هم سیاهوشه قصه‌ان قصه است ولی محنم یا جا قصه سیژن و منیجه است و شاه ها درسان خشت میگه سیژن همزه ها در قشق از روز که تهمزن چکنن؟ تهمزن درسه بودن درسه بیشن مستان ولی حفظم از این است که اینجا اشاره به گسپتین تنمتن داری و میگه اگر غارف شاشو جا به من لطم محبت نداره من اگر که پاسازن گسپتین تنمتن من به نشان یا در ویده دیگر اینجا پایه نجد بلند رسول جهانی بگو تا خونت پاس چشبه زمان بگو هست پاس چشبه یه مذهاب برای این مصنع روشن بنابراین دونه دونه اشخاص باید بشنسین، باید ببینیم چه دا به داشتن، چه بردی داشتن اگر می که در باره آخر چید بیشتری کن و همچنین اون دولار رو که میشه باید به دقت یادداشت کنید تا اون هر چی که منظوره بسن این بزر تا اونجور یعنیدی ایست که معلوم باشه گفتم مثلا شخص سوار جو باشه. مراد حتماً چهانسو داره آنه لفتش عبول فوارس کده و عبول فوارس ترجمه فارسیش میشه در حال منابراین اشعال شاهده شاهده یا شاهده بود کن اشاره رو محتسب برونه ترزین اشاره به مباردونی فحمده بزرگه و این مسائل این که اینا رو برای پهند شهده خاقه اینا باید درد برین مده خیلی به اکتصال از این مستوده میگرد من آبودرم که شما نشون بذارم در تواثاره این آنها خیلی دیم فرنگ این اندرس حافظ یعنی میگه که در حافظ هر کلمی هست بار چند بار اومدی و بر کجا از در چه با تا عشق من ساله که الان گفتم ده بار ساله مده این هم نشونیاش اینا من تو اگه نرود که ما ارده نتونسا داختما را به این آسومی یا میز گودی بدن سوفی چند آمده، مرمونه آمد سوفی هست سوفه میده، این چند آمده بعد میتونیم چند تا سوفی چه آمده، اینجا آسان آمده چند تاش تحریف هست، چندش انتباه هست، از سوفی هست چندش هم ازن سوفی هست بینیم این چیز میده، باز دیجای این است به که این کار داده داختن این هم که برای تمام منطقه های ما باید این کار بشید متاسخانه تا الان کامل در داره شامنامه شده اونی آلمانی کرده بود که فهرست شمس از چون بیشت کجار سا باید کنش میداره هم وقت در شامنامه چون بیشت کجار سا شناسنامه اینانی و علاوه شامنامه چون قدر بارانی که با بروز خیلیت دا... هایی باردتر بشه یه چرا باش دیگرش مومد دیگر بعد بود بابو کنیم میشه این لغا چند بار آمده به چند معنی هر دوان جدا نبیش اگه معنی مختلف موانداری معنی اول شو نوار نوشته بعد معنی دو پا مددیم نوار نوارشته بعد معنی سر بوم باز نوار نوارشته یه قدر یک همینجسان زبان این در خواستان کارو بخاندی کارو همیشتر دارن ولی چیز شد صورت ولی خلاص. هم باید که همینجوری نگاه شما باید کردن رو می‌دونم کسی داوی یا فروبران اسلامی مدرد کنیم نوجه هستی نیوم که باستارها رو بکنیم من این بی سلامی رو که بی واسده و همه شامانه جهروسی محتورتنی کتا و زفر باستید فره که مستقیمان از قهلوی و فارسی دردنیم کنیم باید در ارنسیجه خیلی خیلی مخودی داختن عربی در چکنه این رو در جراخون خیلی اصول افتقار و این هست های من از دانشگاه شاکران که هران در این تفاتمان فارسی کانون امیلکو من از کنم اون وقتا اسم کانون امیلکو نا حالا کانون سادت تشکیبی دوش و هلی که از دون بچی دوش که کانون از اوکادا اسم شو این خواهده یه چار من از دیشاران دشن حمل دوده کامپیوتر. ای نا. با کردم این سه این که چود کنم یکیش این هست که هر ترماری میاره بابا چواهی چند یه جلو سه تو دولو مثل آماره چشیه که میاد به ترزیف بایدتر می که هر کنون از این ترمان چند بارون هست این ترمان از کلماتی که یک بار آمده حسن میاد جلوز از, از دو بار آمده سه بار آمده چهار بار آمده پنگ بار آمده تا <تصفيق> کلماتی که میشه از همه اینجا تحیید کردی که بدهد از بعد و حد و در و برونه مثلا که معنی مستقلی نداره کلمات دیگری مثل قشن مثل مه مثل صوفی مثل همتال اینا اینا نیزان در دیوان خیلی عقیده ها خود رو باید شد تریغه رو نشوند. و در اینجای برای که اهل تنفیش همچه این کتاب اصطاب مهمید در اینه باز میگم بگم که خیال نکنید که این همه ای مشکلات من رو حرمی کنید باید خود اینام که افتادی دارن یه مدار چیز افتاده یه مدار چیز رو اون بیت بخوندن نسین صبح و خانه‌ایی که برز جوز دیده این ما بود موقع کنبانند و آنامه در این تحسی وقا شده وقا اومده، نامه‌اش هم نامه اومده و چیز می‌ران وقا نامه‌ای این بنابتی این سون درست نکنند درست هم هنده‌ای نکردند و نظره‌ای این هم یا برد در حال تحقیق‌های دیگه‌ای دیگه‌ای دیگه‌ای ممکنه باشه و آدم دایی دوکار در نظرنه نکنم چه هم مشکلاته این که خیلشون قبول اگر از هر هزار کلمه ای درست کردن یک مثلا دل مشه، از در کلمه کلمه که 100 تا غلط داشته باشه یعنی اینکه از هر هزار کلمه ای که ده معنی در حالت کلمه که یعنی 990 کش برای 990 باید بکنیدش در دهتی دیگر درست. خانون مهندخت، دکتر مهندخت صدیریان، دکتر عدد فارسی و همکار وقتی در فرمیسان عربانه و شوهر شاهای دکتر ابزار میر آبدیبی به باشت همکاری باش. همین طبیل هم چاکیه همین طبیل سالش هم خیلی دور مید من, من دور ام که آمده بودان من از کنم موزور مبارکون که هزار توی بعد در همین جا رو برد مزاشون میگه برد مزاشون میگه های جوان میگه شروع میکنیم جوانون مرسن بیگه بنده عرضت هم این چیم خاطر هم هر سنو کلیت تایی فت و درشت میگه هر سنوش داری به یا من که مثلا یعنی جدون هستم که مثلا بعضی رو من قفت دوزنم یه مثلا یه رو نجد کمشیم من که هستم با دوزاده که آنو چهیم حاضر ترخونده این مطر رو برای مثلا همسال آقا شجاستید رو آقای بوستانی یا آقای محبایی بلکه من از خوابی ناکه هستم این ولی به احمایم نیست. شما اینکه خودتون رو داشته ای خواهد سوال کنید یا به خواهد بزنی یا به اظهار محروانی رو کنید گرمو سده ببرید و امتال ناس سداتون خود به خود اون لحن به خودیش نیست یعنی خود به خود دهم اعتماس میگیره خود به خود دانه دهت کار معرفت خود به خود دانه احماس نیست بدون اینکه شما درش اتخابید سوره وقتی کنید چون تو هایی همین یه نواس هیچ فراز و که معمولاً در حفظتن بزین رو کارد بریم با میدونیم نتیجه این که شعر تحصیل این چه به تدریب مورده یعنی به کلی دماممون اثر بودمون اون بسطلاح احساس و عزت بودم فرقی میدونیم که من کنیم نزدیم شدی احساسایی بیدیم که باییییییییی هر به وقتی این است که باید <متحدث> اینکه آقا شاید تجا سوار می کنه سوار کنه رو کدو <متحدث> کلمه تکیه می کنه تکیه کنید روز چی رو کجا براحت بشیم یعنید ظاهرن و کجا ریشخن بکنه سهخن با خوزخن چه بخونید دو مثل <متحدث> این چه و حالا مشروعش از زبان رو الاسبه یک کمی ممکن است که نداشتن این سواد اطحاب رو که خوبه در یکید ما اینجا جمع کنید برای اینکه همیزار رو که برای آقایی مثلا از جافو رو در اطحاب سنواتی این ارفاز بیادی اما اصل وقتیه و اصل درست کنید اینه حالا ما اینجا میخونیم دوستان که گرفتا جدن درست دوستانشون باید کنن دا یه چربی تکیه شیر همون کلمه واسه تکیه میشه اگه اون کلمه واسه تکیه میشه معنی رو نمی گیره و و همون جایی که اومد یاد بگیرن فقط همون هم تکیه باشه با هر چیزی که در نظر دارید در نظر داشته باشید من میگم من میگم من میگم که خلاف و ثباب است و نهد عهد عرور الباب است زنفهار علی در و زبان علی درمیان, درمیان. دلتغیر دلتغیر. بسم الله ای از این تحسن مناغل که اشخاصایی رو دفن ولی بفتار گشت خواست به بود ناظعی کاغف خواست این سفر ز طابل دبست مشکی نشد که اون رو به نشد کن گرفتی به من صحیحا کنم به خوشگه این سد جازه به کن که سادش بی کبر نفرد در, در مرا در منزل جایان چند چون جرس فیاد میداز هست که برمندی محمد حاضر. شب تارید تو دیل نوچ و دردادی چنین حاضر کجا رانند حاضر ما سبوشتا ها همه حاضر هم ز خودتاری که بزنامی همه حاضر هم ز خودتاری که بزنامی بز کشیدادی نهان چیم آمد انجا که این یک خود از اون قاعدت من شبهاته ما تا مواز حالتان همزه همزه از اون که یکی از این بیتا همین دنگ در همه کار همزه خودتامی چون جاهل این بود و همین رو برده خوند چیز کنفی خوند بوده همه کار همزه خودتامی به برده من می کشید آخر که آخر باید رو بکردی بیاد این را شما کنی این را اینجا هست همه کارامز خود کامی به بد دامی آی نه ما نمی‌روند که دم‌سازن این دوست و در آنکه که بر یک چه یا ده وجود داره. در واست در سه نصف هم که ایک نصف من رو بزدونی از آماده همه کارم زفرکامی رو بزدامی کشید آفر در هشت نصف دیگه که همه قدره در نشراه هست همینطوری همه کارم زفرکامی، بزدامی کشید اون آفر دیگه معنی نداره ولی این آری خیلی معنی داره این آری برای تحجیده همه کارم زفرکامی رو بزدامی کشید بله تمام چه بانه در را گفتم فاطمه این روزا که عریضه نمی‌خوام که این پروژه رو انجام نسخه ها من که این محضان راضی من برم حضید سفادم باید حضام از ما نسخه ها بشتیم دفتر خاندری گفتیم یا ما شماییم دفتر خاندری به همون دفتر خاندریم نوشتیم من یک کلمه از خودم نگ یک کلمه نسخه رو پس پیش نکردم در 99% موارد اکثر نسخه ها رو را می به نظر از اتفاق بازیم خیلی هم دیگه مصدر کردیم عقلیت مصابباقیم از کارمش پر نمی می درم نیه مصدر گرد عقلیت اونها دو بکنیم اولاد معدود کدش کدش کدش کدش خیلی از اونا اگه بخواه در مباشر جا هست می خواهد از اون که جا شاید برکوردن باشیم بنابراین مصدر نصیخانگره نیست که او چیزی خودش زمان است زمان است که شما سیمان گاز می‌دهید، چه می‌گویید؟ گاز؟ همش تونسته است. در رو آدم مطلب خیلی یعنی چی؟ شما رفت 10 سال من داروید که این تازه گره شما فیده سرس می این خیلی این کارها رو صحیح انتخاب کنه در کاری اون پس تا لغت دیگه هم به همین ترکیب انتخاب شده به این ترکیب شما اگر به نسبت تعداد یعنی آقای اگر به تعداد فقط نگاه کردن و به اهمیت کاری هر شخص عوضه شینا داشتن فقط دروی عدد کار شده که ما که چون که این مدازه پتنسانی که این مدیدیت این است که خانگردی اولا خود گوستان بزرگ و مسلم عدد که گوستان من چاردن نوستنگ ها کردن تمامش قدیمترین نوسته های و موجود دیوان های که جدیلتری نوسته قدیمی هست از سرکتانیش قدیمی های قدیمترین و گرده این نوسته ها رو از هوای های برده اولا بعد همان نصال دوردونه اینکه گفته اونی کجاست کجاست بعدش چندو چندو قضا داری؟ این بیش چقدره؟ این همه تردیم بیشتایی روکوه و همان این هشت در هشت نصفه اینطور در سن و سن و در اینی خیلط نمی کنیم شان مقید یه هشت در اینطور من همه ندرد موازو بشم موازو بشم کنان رو منجنیت نزد درد من در نمکسون هارد که یا که تو دمود ملک که هست تو نه. چی بود تو هارد کننده؟ متعجب. تا حسابت اعداد نیست اون آدمی هم که این حساب میکنه و نوشته آدمی نیست که تبکنیم هر آدمی هست که یا همون بیارو بتونه ایدوار بکنه ورداره اکثرشی بزرونده یا آدمیست که چه سال روی همین حالتش تبقیران این سال پردار ما اونجا قرار بگمین که پرد رسفت بکنیم و من فقط مطلب شد بدر این که تا بعدا کلی ماز رفتم سوالی کوچیک کردم که بفرمایید روشن بشه با زبانات و تمام باعث اجازه ماجرا رو وضح با بعد از هر سوالی اون وقت بهتر می‌فرمایید با هم با ماشین صندوقی می‌رسید از خدا که حفش چطوری کارن رو ببینون تا اونجا هم ممکنه هروله کنیم ما و بعد با که که دیش نمی‌دونن ورچه‌ها آمد توضیده‌دن و الله اگر تر کنونی دیدین همین غذا رو دو ساعت که من که همانم سه چهار ساعت دارد همین غذا را شده و اینکه این از بردی رو گستم ماری عزیزه نیست چی چی چی هزار من خود نمی‌کنم ها نمی‌کنم الّا یا عجل هستاقی عرف که هستن مناغل‌ها یعنی ای ساقی الّا از دوگ، یعنی به گردشترا، کس این تاکه را، نگمانه یعنی را و نابل ها از مصدر نه به معنی رسیدن و نابل ها یعنی کس برسون آن را ترمیسی مسئولی که به من برسیم پاکی به بید آخرم نصر و آخر حضور یک همیتاری از رو خاید من شوحافظ مقاما، تلقمن، تهبا اگر به خواهد الان سهلی درود کنید مطا، ما، ترز، امن، آن شد که بار من ساورتنی، گوهت و دفتا که در ها دید یا با این آن شد ای خواهج که در طومه بازن یعنی اون گذرش می دانی به خانه آن ای خواهج که در طومه بازن دید اینکار ما بارو که لب جام کنم، بشو بشو که یاد خوشش با تو داره بسار خودم که رشمه خدا رفتون از خواب خوشا کتاب بخواب یاد خوشش یا یاد خوشش یادش خوش. اون چین آخر خوشش زمیرم دنبال یادش اونتون ضرورت شر بشو که خوش خوشش با دوز دو دو دو. دل دشمنان چی دنیا شراب کجا شمر آستان خود کنید که در راه هست کجا همین رویه دل کجا؟ تو کبل بیده شما خاک آستان شما کجا رو این جناب کجا؟ از این جنا؟ اقراب هم خودی جناب, جناب. جناب خود. یعنی این هم میگن جناب آقای بلند یعنی آقا خیلی موترمن ما لاکه‌گه نیزی که عرضون رو شهر بکنم کنم با آسکان دره‌گنم جناب در به‌دیجه‌گه آفز می‌فرماد که جناب عشق بلند در حمتی آفز یعنی جناب عشق بلند در حمتی‌ها به‌که آشقان رایی جود هم و حمت‌ها مثبت یا اون یکی دیگه جناب روحش ها در جهلت می باراته از آن آفتند روحش در جناب این آفتنده حرار و خواهد قرار همه مدابیدی من ها به چیز قبولی کدند آخوان هم کنم که سیر سرانزای روحانی دوانشاه شاید در جیسدی که دست که آشانه شده این وزن در بسیاری نظره نیجای بازه در این وزن می برماید که کلام پاژه کجا هر تا چیز تبنده کجا ننه رو با او کجا نفریه رو را یش بود وایی از اون‌طوری‌ این ایش آنی نداره برده آخش اصلین اصلین آشربات ها زاهر بیگرده یه فرقل دیگری داده فعیه همی کرده آخش هم دیگری این آشربات چینیداری که قضاً برده میگه سباز و نکت آن دولت محشید بود آن حتش یادگاه ما که بود اون داد دلن که گوپر اصارشت دود در اون سبان به دست داده یارش چه چه چه نه ولی ولی بود کجا با کاندی است؟ یک بطری بود. به ما آمده بود. جو جی جای داره بیچاره می زمانه توی توی او کار بیواسته دکتر خصوص لبان ما اکثر رفتم گل <تصال> لبان نه آخر چیز دل تمره گذاری ببینم ساده کیستگار اون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 همانه حضرت آمانون؟ همانه که ازیار کنیده منشان بوده حبیدو خان قدیبونان جدیده این نصحایی به مخاربه کافیاده همه شون قبل تحصیلی دارد شهرش هم جاد اگر درستان علاقه من باشن این مخدمه هست و من بیدم تمام دونه دونه این نصحای چیز شده هم تحصیلش هست هم تأثیرش داده شده، هم شرحش داده شده کجا از این چه جورو، باست چه هست چه جورو نیلیم با امرو، باست دیگه خب به من چیم اگر اون تو و درمارا خواهد اما آن دو در چنا نه اول یاد شنو هر دو دشمنان و برج مصلاط و آن ممکن که پرکان در اشت نار تمام نار جمالی جار و او و اشت ها ترده اسمت برون آود از دونی خواهر گفت و بگم گفت که خوستندم خوال چندت نفو تا از اگاهی وقتی که دوستی یا اگه خوش خانه هستی تو و این من که مثال دیگه دیگه دیگه نداره اخواتی لحنی که رواند رو ببخشیه در نسخه روزو خاندری هم که در این باقش دیگه که گرگشت یا گرکشت اینجا نسخه روزو خاندری هست گرکشت مستنده کشت، یعنی کشتوار گرکشت، این اما من این لغت ندیدم اما مثال تهرکر در اون نیرومی بود به هم به هیچ چش نمیشه در این موضوع اینکه در دوره ناکره دونشاه اصلا کافوگاه در یک جود نمیشن تا عواسط دوره ناسب دو دو جود کافوگاه در یک جود نمیشن بعد که در ممارک عربی کلمات فرنگی آمد داشتان بی چونگو آمد واسا در نمیزان گو جه از از عربی گاه که برداشتان کافو ست نقطه برشتان به گفت، نگاه روی سرکه شپراه ستا که داشتند تمنون توش آنمای اون حروف هست به جا روش پراه ستا نقطه داشتند خطات های ایرونی این ترجیب رو نبازنید و گفتن این مهمیتیه سرکه شدار داشتند شد دو تا سرکه این دو تا سرکه شدند مثلا فناوری قبل از رو هم فناوری در هر صورت گلگشت یا گلکشت رو هم اول رو از رکش نشن هم دو سن و این مسئله سمارو برای خواه مرشد من گرد که برای خواهد خواهد شدید من چی بیشتر شدید؟ اون رو من اطلاق ندارم اما فکر چی باید من درم برنم آخر مستد آفایی رویش از بابا یا رو برداری که در بوده فیری گلگشت بحث شده بستنیم بحث کنیم نگه بودتای ندارم نا دارم بحث کنیم ازا ما بحث کردن نیشد نه از سوکونگرد حالا، برای اینکه تویزیر میزید در اینکه اینکه نسخه سلطور غازم به جا بلند برم کفتیم و اون نویشتم که اگر دوشنان فرماییو کردنیسته این دعا بگیرد اینو چگاه چکاریم هم این کنیم؟ اینه چی نفه قردینیم که ما هست؟ ما برهر از یه نصف میکنیم مهر رو سر رو بخونیم ما می کنیم برهر بگیردیم اینو چایه هایی بگیردیم هیپتون برای اینکه جواب شما قرد کرده باشنم جواب این است که دوازه نصفه این, این قبل آورده از ا او و این را <bilmiyorum> <words> <arsi> <itsuikal Louise> <k genau> <تصفيق> خلول اجازت نگرد نداره کن به خود بشیده کن شیدار به خلول خواه کرد نظر به نگیرند من جام که خلول به یکم انتماhm رو سلطان، سلطان، یعنی یا رو بو بو یعنی از جانت فکاران یعنی دروح منستان فکاران یعنی منست یا اش مان تو inspir فکران یعنی دروح منست یعنی بداش کن از مثال خوب خوب اگه برای ب повف یاد بمعنی بردیدنکان اگه برای انسان بیاد به معنی دروح شود یا اگه ا хорошо نیز داشتن دیگر هم. حالا این سه ها بسته ها چه اصطلاحی به معنی یعنی آنکه چه که چی؟ سخت است اصلاً فوتیشون. نه. نه. melik de taloma de نویی واقع به براندازان، و آفلاع تو تو من ماچون تو مولا تو انکه سو وصل کوچیکام سو اوزاره یعذر راست از که قررت برو شیخی کنم میگم که حتماً حتماً همه اشتغال تو بگم نگم تو این است که شیخ مطلقاق این آخون است آخون در بیوان آجز راهز است و راهز است و بدید احیانت ندارید دست دانشمند از اجارید این است که دانشمند به معنی کسی که در غلوم دینی مشکلی در دانشمند مجلس باز تو توبه فرضاییان چرا خود توبه کمزرد دانشمند و فرمید و با منی هر سلسله در رقص بالای بالاش بعد از تن تون نفر دوپم هست در هر خانقاه یه تون نفر دوپم دوپم دوست دو داره او رو شده این شهید خواهد میگرد در این که خانقاه نداره کی در هر خانقاه الان خانوان نقاط 6 داشت تاشت مثلا در فقط این دیگه از در لندن جاهای دیگه هست. خب خود دوکرون رو برخش به تیر این سجده که نمیتونه همه در آن باهید باشید برای صحفه رفتی هر یکی از خانم آقا به دستگید و یکیال مردم یکی رو به سمت شیفی منسید کنم این شیف بنابراین شیف هر جا در دیوان خواهد شیف هر جا هست این هست برای که یاد تو که باستم همین که حافظ به خود نتوشی این این رو به خود که این حافظ به میره خودش قربه به اراده خودش و این پاشم از عمیده جبره که دائماً تو شرافت مورد چه هم محافظم، هم همه‌ی دیگران کنه احمر عبادت نبود و از سر خل بود این محبت هست که هم اگر خدا نباشه از از افراده‌ی همه به اینان ندارد تیم، دیگه من اگه به اعلاده‌تالم نبود خدا آخوزی که خود که یعنی به میره خود نموشید این که به میره این جا هستون باشید میراسید به خود را همدید نهی این خراب این بعد اصلا که خوبان واسیدو بخشندگان آمون تا رو بشید بده بشند پیران فارسا را یک نصف خوبان فارس یک دا نصف, نصف با که نصف ها همه اگر پیر رو به معنی سال خوده بگیم معنیش که پیر میگه گفت جوان را چه از دیره دیره من دولی دست من جمع پیر پیر که در تو خود گفتی از یار حالا من میخوام از خودیم از خودمون یه یه یه یه یه یه یه آه ولی تو. وقتی سراغش می‌آیم، می‌بینم که. این موضوع امتحانی هست یا نه؟ نه. اصلاً. اصلاً. اصلاً. اصلاً. اصلاً. اصلاً. اصلاً. اصلاً. اصلاً. اصلاً. اصلاً. اصلاً. یعنی درستان به از همین خریمه اقوال یعنی روم کردن و اقوال اصلا او برد اقوال یعنی پشت گردن دن قبله یعنی جای جلن رو شد اون طرف درستان نماز قابلن یعنی رو در رو و اشنا از شهر شهواز شهواز و از مطرح‌اسمان معنی که پر اوض مخوام که که به مهم داشته شهواز به معنی مصنق مل یعنی مل جنفی نید به که برن و نظر آدم یکی از یکی از شهواز شهواز جنفی نید این یک جنفی تا چکی سریعه هم می توفنشی دو مراقش کنید از انواع اصلا میل ها روش می کنم شهواز زود جنرل دوستی ها مردم و در مردم آراد آیه زبان آن من می آزدین پرانس شهواز کلام برین شهواز کلام برای این معنی مطلق و اشها ترمه اشتغال همیش هم باشید یعنی میلی که آن بگرد اشها یعنی میلنگیستر اشها لنا یعنی میلنگیستر و اشتغانگیستر از ما و احلا مثلا خلق چه منیش میشیم چه حال باید باشیم کوپلن او لا که قدم. اینجا دارم کنم چیزی لازم نیست. می بن یادم که در چه جوری بن دل دار بيه تو انت از ماشین برید رو صندوق اندگی شهابه لغتنانه ده خدا با چست و شین نوشته فرهنگ امیرم همینطور اینجور بعدی نفسی که شهاب با دوره طبیلت بردنموی جاستگرده ای اول نبیده باید را عقل در تمام این همین بیارم چه ها باید تو تو دی سالی در شکل قبلنکوزی، کانفرکت و تمام اینها، جمع، یاد، به آم و رنگ بود خال و خالی، چه حاضر نه، اینجا اون یاد اون حضرت و می گوید که اون حضرت چیزی، برای که کارک کارای ما از نوم مشکاکی بیادی هند از این عشق مطمئن ما مستقنی او از نگه با حضرت خودشه از محلی که به خلایط دارد، اینو میپذنید وگرنه روی توبا و آورنگ خالفت، حاجت میپذن من اون برد اون هزار هم نه و سیاله تو ظاهیم مخصول میدهدرهای از جوانی از حرجت یا از دویدن یا همتر اینا چیلا دیت برد؟ چه برای خوطو به منی شدن و سرد؟ نه، مخصول احطابانی شد بشت بشتیم موجنه در بوره هم موازیدم چه حیاضت برد اون تو بشه وای عثمان باعث شد که شده به من دمنده تو آب و آینده نشین تو کشور پاترای در راست مساله یا و مساله ای که شده بردار نگه the role of the service of the law and math for in psychology the all of the raw in psychology اور بهش روزی قدم قدم قدم رو به یعنی باو تو رو رو قدم قدم کاٹو یعنی شباب مان در می‌کنند. که بیایند. اگر سبکی ندارند، می‌خواهند که بیایند. اگر سبکی دارند، می‌خواهند که بیایند. اگر سبکی ندارند، می‌خواهند که بیایند. اگر سبکی دارند، می‌خواهند که بیایند. که بیایند. که بیایند. که بیایند. اگر سبکی دارند، می‌خواهند که بیایند. اگر سبکی که آدم به از مثال هشتن هشتن من یک خود دوشتن اگزار که نگرم در این بکن هنری نگ و در بعض نصفات کیلانستر مکنه باید نمید اینکه دروس به تنجه یه چیز داره تحبیل که اینجه کلمه بود نفت قابل عربیت را در اثر هیچ سیگل نکون ندامد کرد ندامد کرد یعنی هیچ نکون ندامد کرد را شاهد من به دو سور هستندن هر تای به دریای ی افغان که تصعد کرد کاو یا تای دی دیار ی افغان که تصعد کرد هر دو درست و تحقیق معنی فابی گله این خوب و پیران سفر ننگونان رو های الو <سؤال> علی خانم میمی یه مبلغی ديالش پرداخت میشه نام برای می نام از که این دو خند را دیگه ما خود این یک دو دنس محلتشی جار ممتنه سر آخر آن یک دو که محلتشی جار ممتنه سر یافتار ما سر یافتار ما فناباره این در آخانی لحظه میده اگر از این مدرمان را این این گنام را بازم ولی اگر میده این صورت جاغمی حالا از دوست و اونسان ایگه وی خدا shut it's Risner تا علمین به یکنر رو د burad brwy و نادر و نه نه نه برای خودت از این که سردن منی دارم کار باید هم و زن این از باشید درست کنند اینگاه و فهمیان اینگاه بیشن در روام از دهت محیم نداشد. ترمد اصلی ما بیشه خوالات و سراغ خوهی آن آنچین و ده ها و چیزی نکل بازی واسه این کار باعث از این سرزمین که ما همیشه توجه می کنیم به تاسیسات مدرسه آموزشی، تاسیسات مدرسهی، و want help to know how to do so people party to vibe stronger heart by heart on how to go so i mean by can make sure that can get to down our act act act about knowing know the overall body for the name quando vi vado quando vado io ho bilancio quando vado io ho fatto nazionale padrone io ho avuto un team enorme un attore che sono stato macanero di che le chi doveva capire di che cosa fare e ognuno ha نظرا به آن مادر فاطمه شراب تي که باید می‌خورد. چند تا سیب از باغ داشت که ديون صاحبش می‌بود. فقط وقتی که وقتی بهش او که باعث چه؟ تو دعا و تو این افترده دان که در لغت کاریدن سه مهمیه یادان و ایدان در نید که چه یادیه ویدیو افترامی و که که که از کجا یکی که شم بولن من خیلی کنم کنی افتر می در پیرو کنم من که نتیم زدت آب هم چنان ج disgاضن گذر یا خیجن، من بیشنگتهاب گذر هم چظن و تو準備 پیشنو دیانست strong all in famil post en آوتان پیشنو جدا و پیشنو جد بس آؤ این بلا carro را وطفا خیم کنش در که هستم، آیدی رو می‌دونم. دو تا ما هر جایی رو که هستم، آیدی رو می‌دونم. و قدردانم. فقط هر چیزی اینترنت رو دست. والا. تمام. که اصلا نگه از کنی افتاده هسته این که شده هست. این اول باید گفتش باشه. بعد گرم شد. بعد داره. بسده. بسده. بسده. دیگه نامه خانده. باید هم برای این که هم باشه گفتن که میدونی قدیم یخشالهای وزیو که نبود یا با یخشالهای فخاص بودد که اون باقن، باید یک در در دیموند که گودارهای خیلی بزرد وقتی کنها و گودارهای می‌مسوند اون جندم که اینا درستن یخشاون یعنی که درست، یخش این شرایف که صحیح ست آق یه امشانه‌تر می‌کنن، یخش راستن، یخش راستن آق بودد روی می‌درد، یک درستن، یک درستن حال کی میں در حاضر ہوں یہ در و اگر شود o می بودم. بسید را آنچه دوستان کون که یا آنچه که این این باید. این تو آیان بودید. ما ایمید و ما ایموند اینکه یه کونز نگرد که این که با خیلی چند بودید. نمیدید رو رایی کنید. اینکه سخواه، سخواه ایک از با من این خواهد چند فردو کد در من را دیگه سوخته میدهد یهد او با و از هر کمار حاله بیشت. از سنجه ننگوران برای آمان مرسنگ. شاید دیگه این حاسد خانده میدید. به که از نن نام کننگ یاد. از نام چون کنهارم نام کننگ. شون نام؟ این چون که چون رو نظر aspect خواب و اداره خطاب و میتات مشیگیول و که ما من حال نه؟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 و یک داره نفتیم نمکنه کنی جوان با برد. اینوها که در حالتر دارویسی کنم و هر این ما کنم آدم هستم. محطایی دیگر دیفعه در اوند روشنین که این حوالت از باعه که خواهی سکست. همولان خیلی است. فهلو و در که اون تقییه می که در رو اور وہ تبدیل بھی کر۔ انوانے مارتے ہیں کہ وہ نہیں ہے پر وہ اول جو استعمال ہوتا نہیں کر دے۔ یہ کہ میں کو ارگنی کو کون کروں۔ ہر چیز کا کنٹرول نہیں کروں۔ اول وہ معنی سخت ہے۔ معنی کا و این تا حاضر که بعد پلاک کشید ای بان را به که دار مردم خدا باشه از نو با من کاری که به آن را اشاره به که گفتن چند را بایی رویان هم میگرم سید سایی به همبرات را تمام کنم به قصد بسنید و که اگر این کوئی اور اشغال قرار دار تھا میں نے وہ کیا کہ یہ کوئی واقعی قابل نہیں اس کو بھی عزت دو۔ اور نا نو وقت کہ وہ کہتا ہے کہ ایمان جو کرمادہ و بعد یکی خیلان بشه اتفاد بشید که نوم که آره اون رو بیشت و اون مستفاد رو نوم احسان دید آد و بعد همچنگ دارید که سیستا رو بیشتاید و این حاجی که کشان رو به آدی نمیخرید به آدی نمیخرید این بگه این سند از را آدیه مثل آد این یه Middle solamente اون هم بریشیم، خواهد و این اوافر که از هم توی دیاره و اصطلاح که بود. خواهده، نیستم چیزی راستی دردن درداری ترکنه. این خواهد هموند. یه این حسی را خواهدانه. را خواهدانه هستم دردن. و بعد درم هر کرا خواهدان آخر. مصبی خاکن، می‌خواد هر که را جان اه چه ناجی موسیقی باشه ناجی موسیقی که اینو که علاوه بر اینکه باعث یا یا سران فر و یا حسین حافظ و اینو شناخت و یا حافظ حافظ و اینو و تو کیسا تو تو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو آخه، خیلی مفیده. آخه، خیلی بلی <سؤال> اون چه در دیوان آنطورتی هست این هست که معمولاً ما سلمان هاست مور اکام بهشم تابیده بود مقرد عرب رو میخورد میکرده میخورد این داخل رو دروست کردن و دروستن ایست رو شرن خود کنه میدونستن تا بردو در اینکلاد نهاره اینکلاد و این داخل در این مدران هم بردونش که مستران علی فقط عرب ها میخوب آزبای خانی که ما فراندی و عرب هایی بزنیم چه هم میخواییم و مستر فران مشکول از که بنابراین در روز گاهز بزشته افلاً به طور ترکیم میشه به آدمای آدم های یا لوگی یا پنسیدی یا یا عارفه اون چه شیاره من بنابراین در مقابل تیر سی دیا میذاره تیر موهان رسوبه ما در تحلیل صورتش باعث بهراخر این کار بعد که یه در این بعد هم هر که به بده به بحر بچی تو می‌گوییم نداریم از آب‌تو کار می‌نهام، ما کمی تو کار می‌کشیم. با این‌جوری جلو و روید که از نظر گفت که چه جوری در تناقض واقع باکین می‌دارد. این که سوال واقعاً ما کاش که من تعداد لحظه‌هایی داشتم، معایا را نشانه بود، ولی هر لحظه‌ای و کریم یعنی این روزها برای من نهایت زیبا بود، مانند یک اینجش برای دستی اینجش کتابی سراغ علت ان مشکلات را جایی که یه تعداد زیادی مردم به جلو بایستی که کار کنند، اما این کاری است از چون آیا آب است، یک کشت هنر و دوستان کاری رو، حالا چی می‌گوییم؟ این رو آب است. معنی ولی دانیل بایدی شنیده‌اند نگران شد. ولی بزرگ آب منار بزرگ در حافظ همده درشتیجن دیهان یعنی به بخمان داشتن اینجه مرخ در حافظ جانسیت که دام افتاده بود یعنی جل از خلیشانی در حافظ جمع مجموع در مقابل فرم خاطر مجموع خاطر جمع در مقابل خاطر می‌گویند من را به تحصیل. روز و چرس به معنی و و بازار و در وقت و دادن تو ماهی تا یار و اگه قبول داره راست به مراشیلند داره وقتی گازنگاره مال این <سؤال> شهر آخه این یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه جب شست چاب شده همی رویت therapist هم زمانه همه بارجlide من الان نوم من بذرگون همین شد به و اجمعت رب زمان هم عفتنا رون رانی هم لúblicه افنام ص谈 قلی که که چه این برخافش روشت د برین برون در آبارد بعد ها به نیا کنی یا حتی همین لیستig ترام به مثالی بهنیومین بر میutی کرد صحون هم این باری بارد تفрамی الانتی بريم خلافتی ما رد و دفید glorious کنی دیمی سر و جا اد بر بادیک کفش verändert کنی دیمند آزفروز وfolkelijk آمه سوpert anみست یا چلی grانش وocracyی این چلی過 آجال آبه اصطور عناد با را رای تب عناد ، اما دو شدار ویشتی مادیان كراند با مد با چش برا را وقتی گرا را ویدی پا چال میکناس اطرس بر نزن هفه نارد ویدی Beran که بواسید آلاک که Uض در بانمی آنcks در جما ا از در ت سوالی در quando il mondo poteva funziono certe dini che hanno che sognato vorranno chiedere quello che io ho vidino enti aveva della stessa storia ognuno quando va che si rovano dei cittadini haio che si deve fare per stabilizzare la mondo dai 60 ai non o in grove that would tell a fall of the reed the fall of the bed that is no longer yellow you know the new game of anjar and tune has always been a trial from the start you یه لو اصلا نکاتی نیست که باید انجام بدم. اصلا این هرگز نیست که یه گونه گروهی است که می‌تونه می‌تونه یه گونه گروهی است یه گونه گروهی است که می‌تونه می‌تونه یه گونه گروهی است که می‌تونه می‌تونه یه یه گونه یه گونه گروهی که می‌تونه می‌تونه که می‌تونه و تا پس از سقوط تمام آوری باقی داشت ما فقط داشتیم می‌گفتیم یک مسئله از آن باشه که با دستمان قابل انجام باشه و به خاطر اینکه سیستم‌هایشان خیلی چند برابر هستند و راه راست این حاجی قدام بلای نفتین هستنید. باز، باز، حاجید دو تا، دو تا قدام بلای نفت کشوید. ما منزدن که قدام درات که هم و شهاد هم دیگید و دو تا که به چه محمد از ایاره چه محمد از این همین چه قوامت دین حسان همین حاضر قبامونه جهد نیست قامزان قبامتی رزیم نیجن محمد با و ظاهران خیلی چیز دیده ایوی دست درد دیده با استفاده از میل در پتانسیل 833 با ماجنسه حاضرون و بار دیگر حاضر در یک دهه بعد و تاثیر صحیح فشان که توی جنگان تا یه چیزی از دهان و صدایی از صحن، هنر شیونی است. شاهدی از دوست باقی نشده ام. به برایم دوست نبودی. به چند نشان که دوست داشتم. که اون روزه رابط دران ستنشیدان نیتها پیشداران ساهده با دل این چه با دل گنرمت هر dans cela c'est bon tant que le plan prédictif de posture de sa roche notre là la négro نتدار و برزبور ایتون حافظی بخش ناموبی جهان از اون حاجی قوان هر کنین نشتن بخواهد مجلس و از که این که اینجا آفظی که از شدیرداش اینه که لباقه کنسید کودم درام این اتفاقی که یک به سه عدد سفنده هستی داری از معلومه و این رو خیار که نخواستی دید که این محبت کنم این خضاری که که رو و هیچ خلال به این این نارما زیاد و انزاده میبرید این همین زیادی بمیتونی که خود خود تو بمیتونی که که نارا فرمیتون بمیتونی که خود تو بسیدی کنم که یک معنی هم به معنی خود رو بیرفته از جانی و مدام به معنی شراب خود مدام شراب خود و مدام شراب خود از که دیگه این تا نور باره به از جانگاه هم مطبط ببینید هم نکه هستم جوتن به معنی آواز میده مطبط ببینید مطبط آواز چرا؟ برای سکار زهان بکان ما شد. اینکه از این ما سرکت که سکار زهان بکان ما، اون وقت که شدون این خودت خدایاتاکی سرکلی بوده. اینکه مطرف رکت تو بود روکران زهان بکان ما شد. از این پسید می داره شدن. از این مهمی درین که بینید یعنی آباد. اون از این از این دوستانی که احیاج از این که برای چاهلید. بساندیه قضا به تحضیح ما شبیدی و چندی و موگند یکی و جیزا نداره من تو زهان به آخر بسانش خیلی بزنی قشنگیی که بیزارو برای آزی بسانی آخر بسان تحضیح مفرمه که علائه که برخواب ما خود کرده علائه که برخواب ما خود کرده به خواب شعرمیدان قسمت بود، به فاظ عزیزان که یاد آقاییم که در شد تحضیل او را چه که در زندگی کار بوده به تن فرافات را وگر گرد آدم برای آمد که وقتی بر بس نیاد که خواهد که در فاظش به آدم پر نجد تا گول به محل وشکتو به اون либо بل بل چند بل بل نуюه عدد لید جذفت و فقط فقط یه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه که دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه این دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه با در آره میگه در حدید این کنایه از این دو یکی هر قدر مومنه قدر مومنه با این در دو در انگوشن فرکوشن خدا یعنی در خدا در تصالح خدا یعنی دیگر هر هم ایت تر خیلی با تحسین بزرگی از شما از شما می‌خواهم این مسئله‌ای که می‌خواهیم از این مسئله‌ای که حتی که که حافظی جرم به که را کردی این آتومین به نزیر احمد اینکه داره که حافظی خانگانی کرده که دردازه رو شده را باید یه یک